چه شباهت من به عشق قدیمیت بودی مهدخت همه تو من تو عشق بازی دادی خسرو کاری که با من کردی از مردونگی بدور بود خسرو خان خسرو خان تو به غیرتت معروفی تریاد دست سری و نسبان دادن از تو به غیرتت بدونی نگاه کن چشمتو باز کن ببین شکل تو نفس اینا رو ببین اینا الان آدمی زادن خسرو تو کردی تو دعوتشون کردی رقصه با افیون تو کوچه و نفشه خرابه ها بچه دیدی از زناشون شدیدی بست دسرا زنجیر دیدی حلقه خفت زدی گردن اولادت سپردی زنت تو دست دلال جماعی هرچی دوری مصطفی رو با تمام در دربار و گزرا وکیلشون تو چی گفتی از ببین. من دزدی کردی. من تو هم خود از مهربانو دزدی. یاد خواهی با اسف چه با منو به چه با طول خاری، چه با آدم خاری. این بود اون خان. این, این بود اون مرد با صفت؟ این بود اون مرده با غیرت. تو منو میگشت این بود تعریفای که تو کرده این بود اون, این بود اون تحریف هایی این بود اونی که منو دوست خان تو عمل یز تو ظالمستی خوانیم. تو با هزون میخواستی. ظالمست. امنست. ظالمست. خوانیم. اینچه چه, چه این مرزی که مردم میکوشه عشقه ولی خسرو خون همیشه همه ایچی برش محلی است که اون ترمه رسده چاکره هستن خون خون خون خسرو تا حالا عمل زور میده دیگه نیست میشه خانم متاسفم بهت پول میدم هر چقدر که بخوای رواله عادی کار که بنده با اطابک خان یا نظمیه تماس بگیرم و بگم شما چه مدارکی داریم کمی هم معطل کنم که سر برسن و شما رو به خودشون ببرن. اون وقتی که کارتون با کرامال کاتبینه ولی این کار رو نمی کنه. شما هم این مدارک رو بندازین سطلاش خواه شر میشه وسطون روزگار همینه گاهی دور دور آدم های الان هم دور دور عطا وکفانه باش کنار بیایم بهتره فرو اوزاد خوب نیست خیلی دنبالت گشتم میخوام یه کاری برای بکنم شنیدم همه چی تو حده تو خوشم که کسی تا قبل از نها رو از آزامنشون میشه بهادو خان از که تالا شده بهادو خان من باید باش حرس بزنم نها رو قبل نها رو هم نمیتونم <تخفضر> اجازه بده خواهش میتونم الان بهادو خان دومانی بخانه هست بازو منم بخواهد منم اجازه هم بیدو کنه خوشم کنم شما این بهادو دستیشتونم اجازه بدهی من باشون صورت بکنم اجازه بگرم خوشم بله آقا. خانوم شاکیبا تشریف بره فقط قول دادیم که درد سر واسه ایجاد نشه بله متوجه چشم به امید دیدار خدا نگه خدا نگه به به خانم شاکیبا خوش آمدیم. خوشحالم میبینم اتون تا به حال کسی رو ندیدم انقدر نگران داشته باشه همه شهر دلنگرون نتونن لابود مهره مار داریم براحتی کسی رو که بخواهین خدمتگذار خودتون میکنین نه زمانی که بهتون گفتم انتخاب کنید یا این طرف یا اون طرف فکر میکردم طرف حق رو انتخاب میکنین الان تو این کسافتی که گیر کردین خودم مقصر میتونم چرا فکر میکنین گرفتاری کسافت شدم واقعا آدم فروشی و فروختن شرافتتون هم ارزش این اتاق بود تا به حال تصمیمی به این درستی تو زندگیم نگرفته بود از وقتی برگشتم ایران سلسله وقایه برام پیش اومده که باید شده آدمای مختلفی سر هم قرار بگیرن آدمای راستگو و درستگار آدم های دروغگو و فریبکار آدمای جنایتکار و قاتل اما تو از همهشون شون بودی تو اون مسجد ده نفر کشته شده باشن یا هزار نفر فرقی نمی کنه. اونا آدما به خاطر اینکه میخواستن جلو گیری از پیشرفت و ترقی مملکت بکنن کشته شدن. پیشرفت و ترقی مملکت قربونی میخواد خانم شکیبا. نمیدونم خاصیت این میز و صندلی چیه ولی دقیقا همین حرف از زبان کاشفی بیرون من. تو برای بهادرخان شدن خیلی کمی. سرنوشت تیره تری از کاشفی منتظرته. آدم فروشا همیشه از سایه خودشون هم یقین دارم از امشب یک شبه راحت نخواهید داشت. بهادرخان. بس کن خانم شکیبا. بی خود کلم و جمله پسن هم قطعا نکن. چادر چار کردی فکر میکنی یادم رفته از کجا اومدی و چیکارا کردی؟ تاسفم او. اگه عکس های به بهم بر نگرده. خودتو روز آمد به آتیش میکشم. عکسی وجود نداره خانم شکید رو متاسفم. <تصفيق> خانم شکیبا، چند نفر دارم دارم که احتمالاً به خاطر شما بعد بعدی از اینجا برویدم دستگیریتون کنند. خانم شکیبا، خواهش میکنم. اینجوری دستگیریتون کنند. چند لحظه باشین، فکری میکنی، یه کاری میکنی، اینجوری فراریتون میده. <متحر> <متحر> خانم شکیبا، خوش میکنم. ولشە. فرەشی تو ماشیمنا. بن دەستت. وەرە لای شینی ماشیما وا. ئێەت تو برگردات او برگرد ببینم امی جو برگردیم تو لطف کن جلو پلاستو جمع کن بدون این که بری پیش خسروخان نن من قریبم بازی در بیاری دوم تو بذار رو تو از زندگی ما برو هر شبیه که زیر سقف این خونه میخوابی به سرم میزنه یه چاخو بردارم بیام سرتو ببورم نمیگم که بشنفم نمیدونم چه تلسمی دوباره خسرو رو کردی که داره شال و کلاه میکنه بره نمیخوام بلایی سرش بیاد فقط اینو میدونم که هر بلایی تو این خونه سرمون میاد زیر سر توه نادر برو قبل از اینکه دستم به خونه تاقشته بشه فقط برو من هر کاری کردم به خسروه من خیر و شعرت و زندگیتون هست اراده و تصمیم خسرخانه هیچ کاری رو سر خود نکرد. من فقط موازه بتونم بزن. این حرف و حرف و آخر حساب کن یعظم که هزده. با سن هدیه این مزا بارم زیاد هدیه زندگی رو دنیا کچیکه و آدم ها سر سرکارشون به هم میافته رو میکرد یه روزمنو تو تو این وضعیت با هم حرف بزنی آدم تو زندگی همش بر سر دوراهیه هر راهی رو که انتخاب کنی کل مسیر زندگی تو عوض میکنی. وضعیتی که توش قرار گرفتی حاصل تصمیم قلطیه که گرفتی اون موقع که بهت پیش‌نود دادم. یای فانو کنی اگه قبول کرده بودی حالا نشسته بودی تو خونه و فانومی می‌کردی. یالا رابیا سر دماغت نمیرسی زنده بودن صدقه سر منه بخام بیبونی نخام نمیبونی به قرض که پاید زنده بودی پاید جای اکسارو ببن بگی من میدونم یه نسخه دیگه از اون اکسارو داری جای اکسارو ببن بگو و زنده ببن اون وقتی که نایی خدمت بگو کجاست تو فقیرت اد <تصفيق> نفهمیدی مرکم جاست توی دستای من داره دور سر نیچرخه یا ببینم سلام اینجاست اگه اینجاست یا هر جای دیگه بگیر نه اینجا اینجاییز خبرم ندارم کجاست پنهون نکنیم اکس چاپ نشده روزنامارم انوی ها جمع کردن هر آن ممکنه دستگیر بشه ولی صبح اینجا بود پیش خب بعدش رفت دفتر روزنامه با یه آقای به اسم بهرامی بادرنامی کار داشت پریشونم و وصبح که رفته به هم نگشت منم خیلی بریم عوض ای تو خدا بایستی منم چادران محوض کنیم همراتون بیان بیتونستم کارتو تمام کنم حالا بازم میخوای لچ بازی کنی؟ ها؟ یاله را بیان یاله فقط تا شم ببور میان اگه حرف بزنیم به جای مرد، زندان در انتظار تکنیم خوب بکتو Oh, che sarete a forti e le donne del sacco <coughs> dei vostri! چه نیسا خواب؟ اتفاق بعدی افتادم اشتباه با کنم از افلا باید بنا توب با حال با این آخری کجا دیدیش؟ کنه خب بریم اونجا اونا تا صف هستم این که داریم یا تو هم میزونم کار بکنم واسا واسا این چگاه شما خواه تو اینجا چگاه؟ نه اکمانو شکی با مشنسی. ما خسرو خان بله شما خوب شد دیدمتون بله با امروز اینجا بودن با همین بهادر رئیس جایدمون درباسم شد بعد موقعی رفتن چند راست همین گردن کل افتر ریختن سرشونو بردنشیم من فکر میکنم که همین بهادر خان راپورتشونو بودن به حال من تقریبشون کردم میدونم کنم بچه ما شلو چی چرا نکشتم ای؟ چی به نظر جلویت؟ واسه خاطر مهراد این کارو نکردم. ولی این بار رحم و در کار نیست دروغ نگم بدم نمی چیزی نگی اون اکسای لعنتی که واسه همه ما در شده دلت پیداش میشه پیدا هم نشه کسی باقی نمونده که بخواد دنبال لو دادنشون باشه بعدم به با به دستم بدی تو اون بلایی میخواد بخواد سرت بیارم نمیدونم این چه رازیه از جماعت از من خوشش نمیاد نه که کسی به از هم گذشته از جماعت همین با جماعت دستانتون یک جم بمیره. اون از سنن این از من هم. اون از شکو این هم.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 از خدا کمک می‌خواست به بچا اینید همه از تو یک به فقط یک کلم می‌گفتی اطهاب اشون غلط کردم این سیخا واسه تو می‌ذاشتن رو همه چیز به خیر خودت تموم می‌شد ولی نگفتی این عشق در اومد میخوای دل منو نرم کنی آخرش اپتدی به ارتماس ها اشنا بری تو نیست این عشق بری خداست بازار اومدن در ماله. ببینید اینام یکی ارباق در از ماله. همیشه یکی هست که بل بیاره. که نجاتت بده. ولی ارباق من ها آقلی هستیم نذارید خشبه تو قرار بکن و خسون خواهد <تصفح> شون نمیتونیم بروز تصمیم بگیریم شما که میدونیم من هیچ کارم اگه کاری کردم به دستور دیگرون بوده اگه اگه به بر... <تصفح> انتماستون میکنم من به دردتون میکنم بیا و بزرگ میکنم نکن نزن تو رو خدا نزن هر کاری بزن میکنم ماما نپیده مرد به این کارو هیچ کدوم از اتفاقایی که افتاده به خاصت من من تو خودم ازدارم تو خودم ازدارم تو خودم ازدارم پسکتا کنید رو با شما نیست؟ خوشتا سر اونم دارم میا. این خانم همراه شما؟ بله خانم من معصومه هستم. اسمتون رو تو این خونه شننیم. میشناسمتون خوشحالم زیارت تون میکنن. خیلی خوش اومدی بفرمایید. خااننم راهنمایی کنیم به سرتر نه ن ممنون من منتظر میمونم تا مهمان خانم تشریف بیان بعدا. منزل ما رو قابل نمیدونی اختیار داری خانم شما خودتون قابل می خانم باز که برگشتی نگفت هم دست از سر خسرو خانبردار میبینم که هنوز توق به گردن و در رکابی دیشب شبهت فرصت دادم استفاده نکردی تا شب نشده فتنت تو جمع کنه و باید اونجا چرا؟ پرموش کردی برای فرشتاری از ما شما آمدن بیرون اون یه اشتباه بود تقدر نجات حاجی دید نیت دیگه هم پشتش نبود اکس سعی سالم نگه اینجا؟ میخوام صورت همه یه آبی بزنم لب چشمه بریم خونه نمیخوام با این شکل بیام خونت جونم داد از خدا خواستم دوباره تو رو به من برگردونه با خدا معطی کردم تا آخر عمر در کنارت باشم که هر روز تنبه دار از گردنم باز کنی البته که از هیچ نمی ترسم خودم میدونم قدم با خطر گذاشتم بخم این ادامه بدم تو این هم قدم نمیخوای؟ قدمت رو چشم اگه دوباره تنهام نست قول میدم هیچ وقت تنهام نست هیچ وقت قال تو کرد. خندی ساده بشین روبرون تا من مثل آینه تماشا کنم به زرار یه گم کردم تو چشمای مسته تو پیدا کنم به تو چی میخوام از این زندگی دل من تو رو آرزون میکنه کنارم بمون رو نگردونه زا تباشیم و باعث رو میکنه. I'm yeah. به جزگری راهی نمونده برام تا حرف دلن رو با چشمان بگم